ansarkilim.ir تقدیم میکند یعنی بنیانگذار لیبرالیزم درون جمهوری اسلامی یعنی آقای هاشمی که بنیانگذار چنین مفاسدی است این که بگیم انقلاب به نام اسلام تمام شد از اینجا به بعد باید لیبرالیزم رو بریم در جمهوری اسلامی نهادینه کنیم این یکی از جرائم آقای هاشمیه نهادینه کردن تفکر تکنوکرات های لیبرال که بعداً فامیل نزدیک ایشون به عنوان سخنگوی حضب کارگزاران گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی هران کل لیبرالیزم داشت در این جامعه نهادینه کردن همین آقای نهاوندیان کنار دست حسن روحانی و کنار دست در واقع کسان دیگهی کتابی نوشتن به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی در صفحه 782 انگشت گذاشتم رو اینکه طرح جایگزین برای الگوی مطلوب برای اقتصاد ایران نگاه نوکینزی هاست. خوب دقت کنید مفسدین فکری مفسدین تفکر استراتژیک یعنی کسایی که میگن آقا الگوی مطلوب برای وضع نامطلوب امروز اقتصادی ایران نگاه نوکینزی هاست نگاهی که امروز در ایالات متحده و انگلیس پاشیده نگاهی که امروز در ایالات متحده و آمریکا از مهلالش خودش نشون میده اما الان آقای نهاوندیان و تیرو و تایفهشون یعنی باند آقای نیری در دانشگاه شریف جریان همین آقای 15 ها و نو ها تو دانشگاه علامه و دانشگاه تهران و مجموعه کسانی که در مجموعه تشخیص مصلحت بودن و هستند امروز دیگه نمیان بیرون بگن آبروی بانک رفت یک فیلم سینمایی یک سریال ساخته میشد یک صبح تا مردم توی تلویزیون حکومت دینی بمباران میشن به اینکه آقا بانک خوب است. هر جا سخن از اعتماده است نام بانک ملی ایران می‌درخشد. پس اگر این حرف شما راسته چرا رئیسش فرار کرد رفت کانادا؟ چرا حکومت مجبور شد این فرد رو برداره؟ خب چی شد؟ خب چرا الان نیستی تو صحنه پاسخ بدید هر روز مقام قضایی میاد میگه یه افتضای جدید فقط گیر ال سیا نبودن دیروز چندیزی دیگه مسئله این بوده که وام های بدون پشتوانه هم میدادن هر دم از این باغ بری میره سرم حالا داشته باشی؟ پس مسئله کجاست؟ مسئله اینه که یه کسی مثل آقای هاشمی دین رو وقتی شد رئیس جمهور بوسید گذاشت کنار گفت آقا این تو قرآن آمده فتق الله و عطیون برای دوره بود که متحریب یاد داد بزنه انقلاب بشه حالا که دیگه به انقلاب رسیدیم محسن نوربخش و روغنی زنجانی و این جماعت باید بیان بگن چه کار کنیم اینا هم تو جای درس خوندن که چیزی به نام علم تقوامت ره نیست آقا فتق الله و عطیون نکرد خب بعدن دولت بعدی آقای خاتمی هم آمد همین رو ادامه داد گفت بابا دین مدان حمایت خاتمی گفت اگر دین با خواسته های مردم در تعارض قرار بگیره آنچه که به زاویه رانده می شود دین و منادیان دین است یعنی خواسته مردم هر چی بود دین باید به خواستات هم در بده و الا دین به زاویه رانده می شه خب آقای خاتمی تو و عنوان انصارت روز به زاویه روند شدید دین که به زاویه روند نمیشه بنده خدا